اعوذ الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بحث مالکیت فکری و فرهنگی جلسه یازدهم یکی از ادله کسانی که قائل به مشروعیت مالکیت معنوی هستند دلیل خودشون رو نظریه منطقه طرفراغ می‌دانند. نظریه منطقه طرفراغ به اون حوضه از شریعت نظر داره که چون ماهیت متغیری دارد عناوین و موضوعات می با تغییر خودشون احکام متغیری رو به دنبال بیاورند و شعره مقدس جعل قوانینی که مناسب با شرایط و اوضاع و احوال خاص هر زمانی است و مقتضای هر زمان و مکانی است به ولی امر حاکم شر این اختیار رو داده است که در چارچوب معینی و تحت یک ثوابت قوانین رو جعل بکنه خب یعنی اشار مقدس در بعضی از موارد نسبت به بعضی از موضوعات حکم تکلیفی یا وضعی صادر نکرده است بلکه اختیار او رو به حاکمان جامعه و فقهای دین سپرده است که بر اساس مسالح و مفاسدی که متغیر در هر زمانهای مختلف تشخیص موضوع بدهند ومصالح و, و مفاصد موضوعی را که شارع نسی در او نداره و حکمی برای او بیان نکرده خود حاکم شهر با توجه به تشخیص مسالح و مفاسد و تشخیص موضوعاتی که دارای این مصالح و مفاسدن و ادله شرعی که از مجمونها برمیآید که در هر مورد چگونه و چه, باید چه حکمی باید کرد نسبت به اون موضوعات متغیر موضوع خودشون رو دارای حکم بکنن و نسبت به او حکمی رو صادر بکنن خب مثلا مسئله تفریح در این دور زمانی جزء زندگی شده است که از برنامه های ثابت زندگی است خب پارک و سینما و بازی های مختلف چه برای کودکان چه برای بزرگان خود چه حکمی دارد ابزار آلاتی آمده است وسائلی اختراع شده است که میتونه ابزار برای بازی باشه وسیله‌ای برای پر کردن وقت باشه وسیله‌ای برای تقویت ذهن باشه مثلا مکانی باشد برای بیان مرادات کسانی که صاحبان فکر و نظر هستند و چیزهای مختلفی که در زمان اشار مقدس نبوده و قابلتر هم نبوده و این اشیا میتونه موضوع برای منافع یا مفاسدی قرار بگیره حاکم شعر میتواند بر اساس تشخیص موضوع و مصالح و مفاسدی که دارد با توجه به مسلحت جامعه و در جهت در راستای رسیدن به مقاصد شریعت احکامی رو جعل بکند و نسبت به اونها حکمی صادر بنماید مطابقه با این نظریه منطقه الفراغ که بعضی از موضوعات هستند که اینها مورد حکم شرع واقع نشدهاند مالکیت معنوی رو میتوان در این چارچوب قرار داد به این بیان و به این عبارت که در رابطه با مالکیت معنوی شارع و حاکم شر به یا قانون گذار می تواند نسبت به این امور فکری و معنوی مالکیتی اعتبار بکند و برای او مشروعیت قائل باشد دوم اینکه این مالکیت معنوی می تواند موقت و محدود باشه، یعنی دارای دوام و ثبات نباشه. و تابع شرایط و اقتضاعات زمان و مکان است، ضاع قابل تحول و دیگرگونی هست میتوان به جای نظام مالکیت معنوی نظام دیگری رو جای گذین او کرد و او رو تعطیلش کرد. سوم اینکه مدت و شرایط ایجاد نظام مالکیت معنوی به یک ای است که قانونگزار تشخیص میده چهارم اینکه پس از وضع قانون جایگاه معنوی رو میشود در ساختارهای حقوق و نهادهای حقوقی که توسط قانونگذار جعل شده کاملا مشخص کرد که دارای چه منافعی است و چه ای دارد خب گفتن مطابق با این نظریه که نظر منطقه الفراغ است میتوان برای مالکیت های فکری و معنوی ارزش قائل شد و حقوق رو بر او مترتب کرد و احکام شرعی رو بر او بار کرد لذا اینم یکی از ادله اثبات حقوق مالکیت فکری است البته در رابطه با اینکه منطقه الفراغ حقیقتاً آیا ما داریم مواردی که شاره سکوت کرده باشه حرف نزده باشه و اختیار او رو به حاکم داده باشه و به ولی امر و فاقیه جامع شرائط هر زمان یا نه این از باب تطبیق بر مسادیق است که موضوعات و احکام در اسلام همه بیان شده است اونتاق چون در هر زمان این های جدید و تازه و نوعی به وجود میاد تطبیق کلیات اناوین بر مسادیق این به عهده هر زمان است که یک شقیه باید خودش یا به کمک مشاورین و مطلعین و اونایی که اهل خبره هستن به حسب شرایط زمان و مکان تشخیص بده که این موضوعات این مسادیقی که هستن تحت کدوم عنوانی از عناوین موضوعات واقع می شوند لذا خود این نظریه منطقه الفراغ یک نظریه تقریبا جدیدی است و در رابطه با او باید مبانیش مشخص بشود و اصلش مورد اثبات قرار بگیره تا آنگاه ببینیم نظام مالکیت فکری و معنوی میتواند در چارچوب نظریه منطقه الفراغ معنا پیدا کنه و شرعی بشود یا نه پس از بیان عدله متعددی که برای مخالفین و موافقین نظام حقوق مالکیت فکری بیان شد که به عنوان پیش مقدمه و زمینه است برای ورود به بحث اصلی ابتدا باید یک بحث مقدماتی رو طرح بکنیم و بعد از بیان این بحث مقدماتی وارد ها بشویم و ببینیم آیا مالکیت فکری میتواند منشأ حق و حقوق بشود یا نه مالکیت فکری از دیدگاه های مختلف مورد توجه دانشمندانه از نظر اجتماعی مالکیت فکری تأثیر مهمی دارد در اینکه دانش، گسترش و توسعه پیدا کنه، علوم و فنون و سطح رفاه اجتماعی بالا بیاد. از نظر سیاسی و خب، کسی روی رسمیت میشناسه مالکیت فکری رو، این کشورهایی که دارای این قانون و مالکیت فکری هستند، اینا از فناوریهای بالا و تولیدات فکری بسیار قوی برخوردار هستند، و باعث می شود که این کشورها نسبت به کشورهای دیگری که اصطلاح هم در حال توسعن به اهدیاج به پیشرفت دارند نسبت اونا سلطه علمی پیدا میکنند در نتیجه میتونن توانن خواستهای خودشون رو بر ملت های دیگه و امتها و کشورهای دیگه تحمیل بکنن از نظر اقتصادی خب به رسمیت چناختن فکری نقش خیلی مهم می داره در پیشرفتهای اهداف تجاری و اقتصادی به طوری که الان اقتصادهای قدرتمند دنیا با صدور کارهای فکری خودشون سود کلانی بدست دست می آورن و بنیه اقتصادی خودشون روز به روز تقویت می کنن. اصل مالکیت فکری و پدیدآورندگان مالیت فکری که دارای حقوقی هستند در دنیا امروز پذیرفته شده است و در دکترین حقوقی دنیا او رو مورد رسمیت و اعتبار قائل شده اند ولذا پدید حقوق مالکانه دارند. اما پژوهش مستقلی که مفصلا در این زمینه بحث بکنه و او رو تعریف بکنه و تبیین کنه و مستدل بکنه وجود نداره. این بحث یه بحث تازه است. و اصل مالکیت خصوصی اصلا زیر بنای هم حقوق خصوصی است هم خیلی از نظام های حقوقی و بسیاری از نظام های فلسفی است حالا چه چیزی منشه امالکت خصوصی است هم تملک مباحات میتونه باشه و تملک اموال عمومی میتونه باشه سوالی که خیلی مهم است و پیرامون او باید بحث رو از اینجا شروع بکنیم که آیا آثار فکری در نظام حقوقی ما مال تلقی میشوند یا نه و آیا اینا مالیت دارند یا نه بعد اینکه ثابتشون مالیت دارند آیا ملکیت نسبت به اینها حاصل می شود یا حاصل نمی شود کلا در رابطه با فقه اسلامی از مال و عنوان یک امر مهم بیان و حمایت شده چون که قرآن کریم در سوره نساء میفرماید اموالکوم الملتی جعل الله لکم دیاما اصلا مال باعث قوام، قیام، قدرت و اس زندگی اجتماعی است کسی که مال ندارد بدانت که روپا خودش نمیتونه بیسته مستقل نیست و حرکت ارادی و اختیاریش بسیار محدود است و حساب میشه لذا در شریعت ما به پنج چیز خیلی اهمیت داده شده یکی مال دیگری نفس سوم نفس چهارم عقل پنجم دین یعنی مال به عنوان یکی از ارکان مهمه شریعت است که مورد تأکید واقع شده و اهمیت داده شده و حتی سفارش شده است که برای تحصیل مال تمام تلاش خودتون به کار بگیرید و حتی اگر شما میدانید یک روز از عمرتون باقی مانده است این یک روزو به کار مشغول باشید حتی اگر مشغول کاشتن درختی هستید میدانید بعد از کاشتن درخت قیامت برپا می شود اون درخت را بکارید و بعد دون... از دنیا بروید و بیکار و نباشید و نسبت به تولید و بهره گیری از زمین و اینکه ما وظیفه داریم که از زمین کار بکشیم و محصول به رسپی آوریم تولید ثروت و مال بکنیم بسیار سفارش های فراوانی شده است خب اما ببینیم که مالیت پدیده های فکری آیا قابل اثبات هستند یا نه کلا موضوعاتی که تحت سیتره نظام های حقوقی به دو شاخه کلی تصمی میشن یک حقوق مالکیت ادبی و هنری دو حقوق مالکیت صنعتی خب اونایی که حقوق مالکیت ادبی و هنری هستند شامل پدید آوردن آثاری مانند کتاب کتابها، ساختن پیکرهها، درست کردن عکس ها و الی آخر است اونایی که حقوق مالک صنعتی هستند شامل میشه مخترعان، تجار، طراحان صنعتی، صاحبان صنایع هستند. خب این کارا پدیده فکری به چی میگن و ماهیت شییه تعریف مختلفی کردند که اصلا موضوع پدید فکری چی حساب میشود بعضا گفتن موضوع مالکت فکری عبارت است از, از عمل ارسال پیام از سوی نویسنده به سوی مردم که در حال هر کسی با این وسیله با جامعه سخن میگه بهش میگن معلف برقی گفتن نظام حقوق فکری اصلا موضوع نداره اون چیزی که مورد حمایتی که پدید فکری نیست اون چیزی که ازش داره حمایت میشه در قوانین و نظام ها یک است که پدیده فکری در او ظهور و نمود داره بعضیا میگن موضوع مالکیت فکری امریز کاملا اعتباری که به وسیله قانونگذار اعتبار می شود به نظر میرسه این تعریفات همه مبهمند بالاخره فکری واقعیتی است که قانونگزار اون به رسمیت شناخته و حمایت هم میکنه تعریفایی که شد امور واضحی نیستن و هر کدومم نقصی دارند. این نظریه ارسال پیام موط با آثار ادبی و هنری است شامل اختراع نمیشه. یا اون نظریه که میگه مالکت فی اصلا موضوع ندارد اینم هم خوب قابل قبول نیست. دون یه امریس که او قرو رو پذیرفتهن یه وجودی مستقل داره و بر روی او قونگذاری شده و مورد حمایت قرار گرفته پس اینکه پدیده فکری امریس مستقل، قابل تعقل و واقعیت خارجی داره این یک چیزی است که مورد قبوله و لذا دارای ارزش است اگر ما بپذیریم و قابل حمایت است و دارای جایگاه حقوقی داره مهم اینه که آیا ببینیم آیا پدیده فکری مال حساب می شود یا نه آیا مثل انوال دیگر مال میشه بهش اطلاق کنیم یا نمی شود از دیدگاه علم اقتصاد مال مرادفه با ارزش است خب حالا سوال آیا پدیدهای فکری و معنوی ارزشمند هستند یا نه خب برای این کار اول باید بریم ببینیم منشأ مالیت اشیا چیست سانیان آیا پدیدهای های فکری دارای اون منشأها هستند یا نه که باعث بشه مال حساب بشود رضا به این دو سؤال و به دو این مرحله باید پاسخ بدیم اول از این، این مال هست یا نه؟ و ثانیان، چه چیزهایی منشعه مالیت هستند؟ در رابطه با عنوان مالیت در اشیاء هم عبارات مختلفی به کار رفته است و خصوصیت مختلفی ذکر شده است تن اگر انسان توجه نیاز به یه چیزی داشته باشه امکان دستشم نداشته باشه خب میره یک عوضی پرداخت می کند و اون شی رو به دست می آورد روزا مالیت یه اعتباری است که از انسان ها برای به دست آوردن او و به دنبالش پرداخت یک عوضی در مقابل او به دست می آد و انتظام میشه. شه خب این تعریفی که مرحوم قراری اصفهانی دارند حالا آیا اینکه مالیت یک شیمی مالیت دارد که امر اعتباری است اینو چگونه باید اعتراض بکنیم آن از کجا به وجود آمده چه چیزی منشأ مالیت یک مال از جمله همین مالکیت فکری و فرهنگی می شود در قوانین کشورهای مختلف مثل کشور خود ما آلمان فرانسه حتی انگلستان یا آمریکا تعریفی از مال ارائه ندادند بله تو بعضی از کشورها در قوانین کیفرشون مصداق مال رو اومدن بیان کرده اما خود مال تعریف نشده است در قوانین مدنی مصر تعریفی از مال آمده اونا اینطور میگن هر چیزی که به حکم طبیعت آن یا به حکم قانون قابل معامله باشد مال محسوب میشه هر چیزی که قانونن غیر قابل معامله باشد مانند موارد مخدر و هر چیزی که مورد استفاده عموم باشد مثل آب جاری، آفتاب، هوا اینا مال محسوب نمیشوند ما به کتاب های فقهی و حقوقی خودمون وقتی مراجعه میکنیم در رابطه با مال که مال به چه چیزی میگن با نظریات متعدد و پراکنده ای روبرو میشیم و خیلی فراوان است که به بعضی از اونها اشاره میشود شود اولین تعریف میگن آقا مال چیزی است که در ازای آن مال داده بشود که البته این تعریف تعریف دوری است چون در تحریف خود مال دوباره مال بکاره المالو مایوب و به اضاعهی مالون در کتب لغت قدیم ما هم گاهی ها اینطور آمده است و این تحریف اولین تحریف از مال دوم فرحوم امام میتونه مال چیزیست که مورد رقبت اغلا و تقاضای ایشان است و بهایی رو در قبال او بپردازند که دو عنصر در این تحریف به کار رفته میل و رقبت پرداخت ما به ازا تعریف سوم از مردم های خوییست که مالیت است از اشیاء که به لحاظ آن که مورد میل واقع میشوند و برای وقت نیاز ذخیره میگردند و مردم به آن رقبت دارند و در مقابل اشیاء مورد علاقه خود حاضرند پول و غیران را به دهند انتظا میگردند میگن امری است که خلاصه اول از مورد میل است برای وقت نیاز او رو زخیره میکنند و حاضرند در مقابلش پول یا چیز دیگری بدهند البته همینطور که ترپیشون معلوم است مالیت ولو امر اعتباری است ولی اعتباری انتظائی است امور اعتباری دو قسمند بعضی منش منچه دارند می انتظایی، بعضا منشه انتظاع ندارن از اختراعات خود ذهن است او رو میگن اعتباری سرو یا اعتباری انت معلوم می شود که مالییت یه امر اعتباری انتضاعی است که منشه انتظاعش در خارج است. چهار رو می تعریف از مستمسک است که، دارد مالیت یه امر اعتباری و است و از چیزی حادث می شود که موجب حادث شدن میل و رقبت مردم به آن شود به طوری که مردم در بدست آوردن آن با هم رقابت و برسر آن نزاع دارند. در این تعریف هم دو فاکتور داده شده است یک مردم میل و رقبت به او پیدا می کنند دو بر سر او رقابت و نزاع دارند تعریف پنجم این است که مال به هر چیزی گفته می شود که به تواند داد و ستت شود و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد پس در اینجا به یک رکن اشاره شده است قابلیت معامله مبادله و داد و ستت باشد ششم گفتن مال به چیزی می که که تا شرط داشته باشد یک مفید باشه و نیازی رو برآورده بکنه چه نیاز مادی چه معندی ؟ دوم اینکه اختصاص به شخص معین یا ملت معینی داشته باشد دو تا فاکتور دارد یکی مفید بودن دو اقتصاصی اختصاص. بودن به اختصاص داشتن این هم یه تعریف تعریف هفتم این است که مال به هر چیزی گفته می شود که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد توباره در اینجا دو چیز به عنوان مال یک کار رفته است یک قابل استفاده باشه دوم قابل تملک هم باشد خیلی از چیزان انسان استفاده می کنه. ولی قابل تملک نیست درست کنید انفال به دست دولت هست و آب هوا آسمان و آخر اینا اموری هستن ولی قابل استفادن ولی ملک انسان نوید یا زیر زمین بنابرای نظریات فقی خب اینا ملک شخص انسان نمیتونن بشن خب اینم یه تعریف میبینیم که این تعاریفی که شده حالا اولی که دور بود بقیه هر کدام یک ملاک خاصی رو یا یک خاصیت و ای از آثار مالیات رو بیان کرده بودند لذا برای اینکه ما بتونیم مال رو تعریف کنیم اولین باید ببینیم چه ملاک‌هایی دارد بر اساس اون ملاک‌ها اگر شی دارای این ملاک هایی که بیان می شود بود اونگاه می شود به این شی بگیم مال پس عمده این است که ملاک مالیت اشیاء را به دست بیاوریم و بیان بکنیم و اونگاه بگیم اگر چیزی این ملاک ها را داشت مال است و الا مال نیست اونگاه ببینیم آیا بر تدیده های فکری و خلق آثار معنوی و فکری مال صغف میکنه یا نه؟ آیا این ملاک که بیان میشود در اونا موجود یا نه؟ بنابراین اگر مال شد اون موقع بس به مرحله بعد میرسد که مال چگونه حادث میشود؟ اما اگر نتوانستیم مال به او اطلاق بکنیم و تطبیق بشود دیگه نوبت به مراحل بعد نخواهد رسید پس هم مالکیت و هم حقوق مالکیت بر آثار فکری منتفی خواهد بود از باب مالکیت و مال بودن مگر از راه دیگری بتوانیم ثابت بکنیم لذا در بحث بعد به این خواهیم پرداخت که ملاک احراز مالیت پدیده های فکری چیست و در تعریف مال و مالیت اشیاء چه فاکتورهایی لازم است و ملاک مالیت مال چیست؟ و الله علی سیدنا محمد و آل طیبین